و لعب دائمت و لعب دائمه شعین اللهم رفیل و جمید موشه و رحمنا برحمتی و رحمنا برحمتی از شد بحث به اینجا رسید که در طول تاریخ اسلامی و معارشی محصوصا در بحش فقه کردن محل کلام ماست راههایی حل شد برای اصلاحات حکم شرعی به حسب ظاهر غیر از کتاب و سنت و توضیحات دیگه قرار شد رسیدیم به یکی از طرح هایی که از قدیم هم مطرح بوده طرح نامی به اصطلاح نام شورا و رجوع به شورا البته این مسئله که مقدار رجوع به در کجاست و محدوده اون چیه در عبارات قاعدی واضح نیست اما اجمالا این مقدار هست که ما برای احکام شرعی برگشت باشیم به شورا و اون مقداری که مسلمان ها اعتقاد داشته باشن اکثریت و مهیار قرار از تو که عمده تمسک افتدایی او به کتاب هم ایی مبارکه و امرهام شورا بینهم بود و شاعرها هم, هم این دو تایی مبارکه. و دیروز صبح هن از کردیم امرهام شورا بین اما نیست تعبیر امرکام امرهام این ای مبارکه تایید میکنم این کار رو که بعضی از به اصطلاح قبایل مدینه و موسیا خزرج امور خودشون رو به نحوه شورایی اداره میکنند در مقابل اهل مکه در موال مهاجر که به نحوه و لا اینها ها به نحر شورایی امور خودشون رو اداره می اینطور نبودن که مثلا رئیس شریه تصمیم بگیره و همون تصمیم نافذ بشه می جمع می شدن می شستن مشارف و نتیجه می احتمالا طرح تلیفه بنی ساعده هم رو همین اساس بود و لذا هم افتداعا انسا اونجا جمع شدن یعنی اهل مدینه که این سابقه شورایی رو داشتن بعد هم ملحق مرحب شدن یعنی سه عمر و عبق و عبوده و و دیگران اینها ملحق شدند و اون طرق معروف هم سردن عباده داد که من نامی امیر و احتمالا این ریشه های در مدینه وجود داشته اجمالا این رو قبول کرد که ریشه های او در مدینه وجود داشته انما چرا محدوده اینه آیا محدود این شورا تا چه حد بوده و آیه مبارد خب این آیه مبارد اتراجی به امروم انصافاً اون نظام نظام شوراییه اما آیه مبارد که به شابه خانفل امر این نظام شورایی تو نیست این مشورته دیروزه از کردن شعر یا مشورت یک امر روانیه یک امر نفسیه یک امر علمی یعنی خاص تعیین می‌کنه با مشورت با دیگران احتمال اصابه رو بیشتر می‌کنه به احتمال خطا رو پایین بیاره. زیادی احتمال اصابه و نقصان احتمال خطا هم به روش ورن یعنی روانی این رقی به نظام اجتماعی نداره. اما فلسفه یه شورای یه نظام اجتماعی است. خب این نظام اجتماعی مثلا جهات مختلفی داره یعنی تحصیل‌ها و نقصای مختلفی داره. یک نقطه اولیش مبدع عدم ولایت اینه اصولا نظام شورا با نظام ولایت جمع نمیشه اصولا این طوره در نظر قانونی در نظام ولایت حالا یا ولایت حزبه یا ولایت مثلا یا ولایت نخلانه یا ولایت انبیاءه هر رایی که من اون منشه ولایت رو فیلم برنسی ندارم اون برای این فرض است که در جامعه یک گروه معینی حالا یا فرض معینی یا گروه معینی بر جامعه اشراف داشته باشه اگر فران توفید رایت بحث های دیگه آگه بحث نمیخواد این بحث بشین یه توضیح راجع به حقیقت ولایت کردن ولایت در الله ریشه های این کلمه و تحلیل این کلمه انشاءالله در یه محل دیگری از اما در نظام شورایی به عكس نظام شورایی معناش اون اون نظام اجتماعی بحث روانی نیست اینو شروع بحث روانی نیست بحثی نیست که جمع بشن آقا رو به در موقع احتمال احصابه رو بالا ببرن <تصفيق> نظام شورایی یک نظام اجتماعی است این مبنا که هیچ فردی هیچ گروهی هیچ جماعتی بر مردم ولایت ندارند اصل عدم ولایت و اینکه هر کسی بر خودش مثلا ولایت داره و تصمیمی که گرفته میشه در نظام شورایی در حیطه انعکاس آرا مردمه همون خود مردمی که بودن و نه زا جنبهی و جنبه حاکمیت و اینها چیزی توش وجود نداره اونی که وجود داره رأی خود مردمه که مقتضی و عدم ولایت این در نظام شورایی و این عرض کردیم این نظام شورایی به این معنا اصلا به معنای وسیله اشاره اشاره عرض میکنم قبول بکنیم حالا این اشکال ابن هزم میکنه میگه خب قدرو مؤکدن اینه که ایشون تو همون جلد و دو مناسبش جلد. جلد جلد دو زده مثلا جlde 2 رو خونده در ادواتش ایشون میگه خب آیا ما دیدیم که مثلا در تاریخ پیغمبر اکرم وقتی بخوام نماز رو قرار بدن یا روزه یا حج شورا قرار دادن مثلا مردم رو چهرم کردن رایگیری کردن که مثلا نماز واجب بشه مردم رای بدن آیا چینچیدی مثلا در تقضی میتونم میفهمند اگر میگه که اگر بشه که ما بیا این احکام رو با نظام شورایی جا و جا بکنیم آیا میگرد احکام خودش با نظام شورایی جهر شد یعنی انصافا حرف کدوم ظاهر آیه مارکه موعیده هم یعنی قطعا نمی‌تونن اینکه این ساده. عالو ان نماد بی او اینکه کلام مشکیل رو نقل کرده همون کلام اقتصاد دنیای معاصر میگه چه فرقی کنه به که شما سودی پول رو نقدن بگیم یا ناسیاگان 100 یا 100 هزار دسته ویزوان مدت بلکه ولی که این نه اجازه استعمال نیست. عالو کلام بلا قوسله و اهل الله و, و این طور نیست این تحلیل و تحریف به خدا منسوب علنا به کلمات دیگران و به رأی و به رأی گذاشتن نمی‌هند علاه یوهان این یک مسئله است که این تصور آمده و دیروز بعضی از موارد تکیه هم عرض کرده و مثلا در مورد پیامبر راجع به عزاد اهل سنت نظر کنه که به شورا سوال کردن که چی بگید به عزاد یا راجع به عراضی از عمر نه روزه به مشکلت داشت یا به کتابت سنن و تبدیل سنن بر به مشکلت داشت از امور رو عمر در همین مجموع مشکلتی مطرح میکرد بعد هم روی مردم به مردم گفته میشون این اصطلاح هم نظام شورایی توی این منا و از تردین در نظام شورایی در میان احلیتوندن تا اونجایی که ما خبر داریم این نظام به عنوان نظام شورایی جا نیفتده اما یه مقدارش که اجماع باشه چرا اجماع جا افتده انصافا و کرارا این توضیح را حرف کردیم اجماع در میان اهل سنت از زمان عمر شروع شد و همین مجموع مشورتی گاهی خودش نظر میده این زیر بنای شد و گاهی هم جمع میکرد افراد رو بعدم عرضه میکرد بر مردم این که اجماع و از شد کرارا اجماع در نظر سنت جد به مسادر تشریه دیگه زمان عمر هم بعد زمان بردی و بعدم به خلافا و بعدم بناشون بیشد که اگر علما برمطلی اجماع کردن اون باید قبول بشه و حتی تخصیص کتاب و تخصیص سنت و الى آخر بحثه در اجماع دارن ما میانیم این اینجا در بحث آنگه متعرفتون. اما به عنوان شورا و اکثریت و این که اکثریت چی بگن این رسما توی کتب احل سنت نیامه و وقت این تفسیر شورا که از کردیم اصلی داشته و این اصلا مرور به دنیای غیر مسلمان بوده و در دنیای اسلامی به چه صورت بوده این به اصلاح اون ریشش که همون عدم ولایت بود و این تفسیر اینجا حالا اگر برتر نظام شورایی چیز رو قبول کرد ما بر چه اساس قبول بکنیم یه تفسیر است که هنوز هم به این فن اختلافی است. یه رنگ شایعی که هست بیشتر ارجاعش رو به قراردادهای اجتماعی میدونن از کردم محسوسا جانجا کتاب معروف قرارداد اجتماعی داره اینا قانون رو ارجاع میدن به این نوع قرارداد اجتماعی و این کسانی که دنبال طرح شورا بودن آمدن احکام اصلا. الان هم در قانون ما ادعایشون همین حرف نوشتن نوشتهن به یک نوع قرارداد اجتماعی حتی خود ولایت پیغمبر اکرم هم یک نوع قرارداد اجتماعی یعنی پیغمبر که در مکه بودن اظهار ولایت نمی مدینه که آمدن چون مردم با ایشون بیعت کردن قرار گذاشت که چه این رو پیغمبر بکنه چه این رو اونا بکنه در مقابل پیغمبر و نظام مخصوصا رو این تکسیری که اددهی از قربی ها دارن حقیقت قانون حقیقت نظام همون قرارداد اجتماعی است که این همون به اثر این حالا یک شدی که حالا من نمیخوام در این مدحس قرارداد اجتماعی که الان هم در کلمات اددهی شروع شده به ظهور طبیعتا اون چه بخشی مشمول قرارداد اجتماعی میشه اددهیشون اون مسئلهی حکومت رو مطرح کرده. و اگر در کتب تاریخ نگاه بکنید این در کتب تاریخ ما خیلی از بیعت با حکومت ها شکل قراردادی داره ظاهر شکلش این طوری در یمن دیگران بایی او کن این که من این طوری باید از ما بیعت مگید. من به کتاب و سنت عمل بکنم ادارست و اجرا بکنم و شما هم در مقابل هم اطاعت داشته باشید هر انجام بده پس این در قدرتهای خیلق ماشالون نحوه قیعتهایی که عقص می شد ظاهرش یک ظاهر قرارداد اجتماعیه ازده خوب پار بازترالتر گذاشتن آمدن معاملات رو الان این صورت کرد که, که کلیه معاملات قرارداد اجتماعیه یک جامعه قرارداد مثلا معاملات بانکی پس در اسلام نبود اگر جامعه اسلام او رو قبول کرد و این قرارداد رو قبول کرد ما به اون رو قبول بکنیم ولی اینکه که چین چیزی در اصل اسلام نبود این هم وضاشت تعمیر دادم به احکام جزائی و کهترها احکام جزائی و کهترها هم نمید فرشم احکام اسلامی اون رو هم خاضر کردن برای یک نوع قرارداد اجتماعی. یعنی اگر جامعه قبول کرد این کار اجرا بشه اگه اینکه مثلا کل احکام و حتی عبادات و احکام دیگر رو اسلام رو کلا ارجاع به قرارداد و قانون اجتماعی اخیرا شاید شده باشیم بعضی از احزاب اسلامی سر کار اومدن خب تاکید میکنن ما هر حکم اسلامی رو که مردم نخواستن اجرا نمیکنیم ولی وقتی به اسلامی ها گفته مثلا اگر مردم حجاب رو نخواستن جامعه رأی نداد به حجاب ما اون رو اجرا نمیکنیم با اینکه گروه اسلامی اسلام گرا ما اون رو اجرانه می کنیم. از که در بعد نوشته ها دیدم حتی نوشته قراردادهای های عبادی بود که خیلی خنده عبادی مثل نماز روز رو هم این نوع قرارداز گرفته خب این خیلی دیگه نماغش می خواهد علایه چه که ما این طرح مسئله شورا به از این در کل تاریخ اسلامی سابقه باشه زمانهای مختلف بروز روز و ظهورهاش مختلف بوده این اصل خود قرارداد خب این اصل قرآنی داره اقوب الاقود این که اصل قرآنی داره اما این که مثلا به این که این حدود اقوب عهود شامل مثلا احکام بشه شامل کیفر بشه شامل کذا بشه شامل اقود و معاملات بشه شامل عبادات بشه این هم یک است که سعی شده از اسلام ارائه بشه اما ترس کردم خیلی هنوز هم حوائل کاره و هم ذریعه خیلی هم بیقایه از این اثبات چنین عراجی فیلتری فی مشکل یعنی که مشکل مختوب به طور کلی حالا این درخاشی عرض بکنم به طور کلی ما در کل تاریخ اسلامی این پدیده رو داشتیم یعنی این ظاهره که عدهی به حسب ظاهر مثلا اگر ما مسنونیم مثلا یا ادعای ای اسلام اما دقیقاً با احکام اسلام حالا به درجه از تفتاد، هشتاد، نوت تا ست درستان مخالفت هم توجیه میکردن، توجید میکردن، تعویل می کردند، توجیه های بسیار بیرسهی ظاهراً اواغل این کار از زمان بنی عملیه به عنوان حکام اسلامی شروع شد ظاهرش اینطور باشه و قبلی ها اینا می آمدن ما مسلمانیم امیرالمومنین، الماملیم و انتظام نه تو کار نه بو شراب می خودن کارهایش آفزش میکردن آدم کشین الاخرین این ظاهرن ولی علم و ایندالله یواش شواش این شد که از همین راه ظاهری که اینها به از احکام شدیفت و کنار دست به این رو تعویل بزن من چرا را نعرض کردم در تاریخ اسلام از سال 128 خروج اصطلاحاً زناده و ظهور زناده من اینجا بگر کوفت کار در یه شرکی داره من نمیخوام چون مربوش وحث ما نیست اون چه که الان مربوش وحث ماست چیز عجیب اینه که یک تایفی عشیه چون مربوش کار ماست اینا همراه این کار میشن و همین رو به اسم اسلام توجیه میکنن از وادی این نرکنم این دیگه بحثی به کشف احکام شریعت خطمه عقل نداریم در خاشی عقل خب جماعت عبال خطاب اینا ننماز یعنی روی که عبارات مختلف خود شرح عبال خطاب و شرح افوالش دقیقا در کتاب‌های ما نیامده افکار و وزیر بناهای فتیش دقیقا یک نشده چون به اصلاح که قیام آمو کرد و کشه شد و مرد لعن و تعن امام صادق کرارا واقع شده کرارا اون بوده. نمیدون حال چرا اصحاب ما دقیقا مثلا طریق تفکر او رو برای ما محقه نکردن که او متأثره بشه خب او به اینجا رسید که مثلا باطن شریعت باطن از امامته و نظریه امامت و است که شما ما تمام شریعت رو کنار بگذارید مثلا شراب بخورین نستیجور زنا بخوری نستیجور تمام این اعمال محرمه و نماز هم نکنی روزه هم حجم زکات حجم نکنی یک تعریفی که نقل شده توجی که اصل اینقدر مخرب است بعد مثلا نماز نه علیه نبی زکات همین واسه امام حسین اگر امام رو شناخت دیگه مهم نیست زکات نماز نخون جناو بکن خب این خیلی عجیبه این مقدار از مدنا نمی ما دقیقا شخصیت عبال خطاب رو به لحاظ فکری و به لحاظ عملی تعریف نقل شده گفته امام صادق خداس ما هم فرمان بروام از این چیزا نقل شده که ارزش ذهب هم نداره و یعنی نمیتونیم درست دقیقا اما خب این پیدا شد درشیه چون رو بخصمان درشیه هم هستید این این منشأ زهور شد و البته این در زمان امام صادق در این فکر گرفته شد و خب بعدها یعنی بعد از اول خطاب تقریبا به چهارصد و چلپنجام سال یکی به اصطلاح خودشون از امه ای اسمایی ها که در قلعه علموت بود به نام حسن به سر محمد به سر بزرگ و امید بزرگون در جانشین حسن صباحه نسبت نوی بزرگونی راستاً منبری گزشت و تشکیلات و اعلام کرد که قیام قیامت شده است و تکالیف تمام کلاں برداشتش رو هدف بیا از تمام این شرایط عبادات مثلا و به انسان است و اونم حاصل شده دیگه شما هیچ شکی نداریم اعلام قیامت و قیامت کرد و تمام تکالیف و دست و, و شراب و الی که هم یک طایفه ای از اسمایلی ها همین کار رویزش رو انجام میگه خب این خیلی عجیبه یعنی واقعا برای ما ها تعجباوره که مثلا حدود 450 سال بر این رسمن یک مدهب بشه در زمان ممصادر که از بزرگان ما به شدت با این تفکر برخورد شد خب این به نظر من یعنی بوده بالغیر از این که انحراف کلی نیست واقعا ظلمه میخوام داری مث که اصلا یک طرف میشه 4000 پیغمبر رسول الله مدن بشارت دادن به این دوره دیامندی به شادن که نماز نخونیم روزه سر نگیریم زنا بکنیم شراب خیلی واقعا خیلی حرف عجیبه غریبی حالا کسی منکر شریعت بشه خیلی راحت تره که ما مسلمونی ما قرآن قبول داریم که قرآن اینیه بعد از این تاریخی که من عرض کردم به 700 سال بعد حالا یک کمی کم و بیش مثلا در همین جریان باغ در سال 1164 اون زن زن معبوده در قریه بدش اعلام کرد که امروز دوره تقرد هست و تمام شرایط علاقی برداشه شد این باز می نزدن همه که این آرام کرد این می آدم معبول کرد تا بگیم تمام شرایع علاقی برداشه شده این باطن قرآن خب یعنی دقیقه على همون تفکری بود که مثلا یکی از عیمه اسمایی ها اعلام کرده بعد از 800 سال بحثان و تسلط مثلا باب به با اون اعلام رحش 11 اعلام شد که تمام شرایط الهی برقرار شده. علائم به هر حال این در حاشیه گفته شد که بر اثر یک نحوه انحرافات فکری وقتی بابش باز شد منتهی میشه استغفر الله به این درجاتی که قابل تصوره. خب یک تصورم کلی شورا بود و بعدا منتهی شد الان در بعضی از نوشته های به قراردات اجتماعی و قرارداد حکومت و احکام و به سر کتابه های معاملات و عبادات و همه رو ارجاع بودن به قرارداد اجتماعی این خب پایلن خود این خودش یک ای نحیی از آنها در محطی شریعت است. اگر حالا واقعا خودشون منطقه نماشی یک راه دیگری هم من عیش مجموع در دنیای اسلام پیدا شد. که من می‌دونام که شیعه ندیدم اطلاع خودم و اون یک حالا چون یک گفتن که اثبات شدید این وضعیت هست یه راه دیگه برای کشف احکام الهی از راه کشف و عرفان و از این الفاظ. نمونه بارز این مطلب در نوشته ان نهایی معروف در فتوحات اگر آن فدمتشون باشه یک کتوها ترون سی سفه های دوی سفه از همون کتاب تهارت شروع کرده احکام فقر ناقصه و میشه و مغذارش ناقصه مثلا در احکام حتی در مثل تهارا به همون کلمه و کذا الان نه روایتی نه آیهی ظاهرم باید مرادش هش باشه. مثلا یک میاد که استحاضه رو مطرح کرده زهر برزان که استازه حدث اشقره زهر برزان که حدث اکبره اینه قسم خالی آغوزی بعد میگه به اندیه نالیصد به حدث است استحاضه حدث نیست هیچ شما هم میتونه حاله نمیتونه یکی بقیه هم با اندیه که ظاهرن این هم آزا یه مرحوم محدث استرابادی ذکر کرده این هم یک راه دیگری برای احکام که غیر از تفاق و سنت به اعتماد بیدن و مخاشقات و حالا احکام ندارد این هم یک راه دیگه پس تا اینجا روکن شد این بحث رو من دیگران جمعش بکنم ما بحثی رو که مفتر کردیم به خاطر کلمات مغموشه هنساری بود از ترین استاد و محور و بحثم کلام میشون که کلام زیاده و افتمال کلام میشه. ایشون سه مطلب رو با عنوان بحث عقلی اوستاد نقل کردن که وقتی صحبت میشه عقل در مقابل کتاب و سنت سه بخشه یکی مسئله قسم خوب که ایشون میگه ملاقات ملاکات نمیتونی بکنی سغراج ثابت نیست یکی مسئله خوب عقل در واقع اطاعت رسیان یا به تحبیر نائمی ملازمه در مرحله معالی نه در مرحله علاد احکام یعنی مرحله امتسان ایشون میفرماد در اینجا حکم عقل حجت، لکن به در نقل نمیخورد چون در مرحله معالیه در مرحله انتصاله نه در مرحله جهر یکی هم ملازمات عقلیه مثل مبحث زد و مبحث مقدمه و اینها ایشون فرمزن این صغرا و کبراش هم تمام یعنی مجموعهی ای که ایشون با عنوان حفر عقل آورده این سه این در کتاب استاد نهارو کردیم از اینجا بحث شروع شد ما عرض کردیم که برای تصمیم بحث مراجعه شد به خود فواهد مدنیه که عرض کردیم چونجایی که ما میتونیم آشاندی از اولین کسی در روهای شیعه که این بحث رو به این سیاه و به این تحبیل مطرح کردن روشکار کردن و مجموع مفاده دوریشون بانوانه عقل آوردن دوازده بحث بود که ما یکی یکی از سواد مدنیهی خوندیم و از به این نه مرموم شیخ انساری کتاب کششون نبوده واضح کتاب مردم مرموم حاجی نوری در مستدر که متعرض میشه کتاب پیشش بوده لیکن عجیب این قسم خیلی مهم به کتاب نقل نکردن بعد از حاجی نوری مرموم صاحب کفایم کتاب کشش بوده کتاب حوال مدنیه بعضی جاها هم ایشون نعمل کردن مثل دیایه اساسی مطلب ایشان رو نقل نکردن ارز کردیم مطلب ایشان رو من مختصر بکنم باز چون خیلی ضروری یکی یعنی یک نظاری شده که آیا ایشان قائل که از دیگه کتاب سننت قرد پیدا نمیشه از کردیم این مطلب قرد در کلمات مرمومه ها جنوری مرمومه فوائد, فوائد مدنی استرابادی آمده اما همه از همه کتاب رو رحمده ایشون یه فائدهی داره ما خوندیم تو این بر ایشون بیگه مراد من از علم معنی عرفی علمه که ما از کردیم کاشی ایشون گفت مراد من از علمه حجت یک شکل راحت میگرد به جای کلمه قطعین ها باست حجت رو محرح میگرد شکل راحت بود خودی ایشان داره خود مقومه محمد امین استراغوزی یک فائدهی داره و هیچ کدون از این آقایان او رو نهم نکرده هم. که مراد من از قرد مراد من از علم شامل علم و عرفی من در اضافه در وقت چند بار عرض کردم ولو مرمون شیخ من طبع کلمه قص رو ارزم یکه باید مرادین ها رو بیرسید مثلا شامل مرادشون از قرد در اینجا باید شامل سه چیز بیشه که قرد به همین مصطلح منطقی که ا یکی مسئله اطمینان و وصول که این نوع حالت روانی به سکون نفس به یک کلام و یک کم مسئله علم و عرفی علم و عرفی رسمشون وضوح هم واضح باشه یعنی به جای این حجیف پرد که مردم شیخ اوورده این سه نکته باید ذکره شد قرد اطمینان و علم و عرفی یعنی وضوح یک مسئله واضح باشه اینه میگن قرد. کل و مرحومه ها چیه مرحومه ها چیه مرحومه ها چیه مرحوم مرحوم تقریبا مرادشی اینا نورده همون علم ارپی حتی بیشتر کلام ایشان با هجه این یک بحث بحث دوم این که ایشان در خلاف کلماتش چه اونجا که مرحومه شیفت و نقل کرده و چه جاهایی که نقل نکرده یه مقداری ایشان یه بحث دیگری داره که اون رفتی به اصول و چون توی اصول تا اون زمان چه احل سنت چه شیعه استدلالات اصولی رو سر میکردن به شکل قضایی منطقی در بیارن مثلا این قیاس اخترامیست این قیاس استثنائی شکل اول این شکل دوم، چون شکل مبارس اصولی به شکل قیاس بود ایشان یه بحث دیگری نیمزدرکه این که به اصول نداره اصلا علومی که مبادیش قریبه از هسمیت یا حسی نیستن این علوم ولی میگن ما با منطق اسمت از خطاب اعتصام از خطاب پیدا میکنم این علوم میتونه اعتصام از خطا داشته باشه لذا مرموم مثلا حاجی نوری و مرموم آخوند و ازدهی به این عبارت ایشون هم تمسای کردن که مراد ایشون این رفتی به اصول ندارد و رفتی به مبادیست علوم اعتباری نداره. این رو علوم حقیقی، یعنی فیزیک و شیمی و همه علوم حقیقی، فلسفه رو یه بحثی چه قلوب دنیای غرم هم هم دارم یه تازه نیست یه مرمان بروجهدی از این اولاتیکی هم پرنده مثلا ایشون با اون فلاسفه هستیگرها و تجربه هایی که در غرمن همزمان هم اون بحثی دیگه او رد چی به بحث اصول و فقه نداده هم او یه بحثیست مستقل الان در دنیای ارزش علوم افاده علوم مقدار انسان در علوم چه مقدار انسان میتونه به واقع برسته که به نظر من مرادیشان از قطع در اونجا این اصطلاح اصولی ما که حالت روانی باشه نیست مراده از قطر واقعا اصابه به واقع مرادشه میتونم مراد حالت روانی ما که قطر یا زن باشه وقتی میگه این علوم قطعی نیسته اون بحث این که ما از کجا بزنیم هرچه اگه ما در این مسئله فیزیری هرچه این مسئله طبیلی همین مسئله فسان فلسف مغلام تفکر دارین در اصله ما ممکنه از الان در فسان دنیای علم جوری برخورد و که اینا بگم ما قردیه ایشون محاسب یه نوع درست نیست خوب درک قرد در تصور مثل آخون گفتن نه ایشون محاسب یه قردیشون بی خود حاصل شده در مقدمات قرده. و من فکر میکنم در اصطلاح علمی مراد ایشان عدم اطابه این قطعه الواقعه که اصطلاح هم داره بیشت یقین میگن قطعه که متابقه بیشتر نظر ایشان در اون جرده نه نظر و هر حال یه بحث دیگری که توی موانه نمیدی نداره هست که ای اتاقا با این بحث هست هم اینجایی که من رو میشه اقنام هست هم جاییی بعدش هم داره ایشان. ایشان که بحث فلسطهی هم وارد شده میخواد تشکیف بکنه در صحت علومی که هستی یا قریب بررس هست در قریب از هم مرادش ها یه بحث علمی داره اون رفتی به اصول و فقه و علوم اعتباری هم نداره اصلا رفتی به آلم نداره. این یه بحث در کلباتی ایشان و در اون بحثی که بر میگرده به غیر علمی مرادش هم کل اصوله که دوازده تا گفتین. یه بحث دیگه هم روخه بدر یعنی طریقی که ایشون عرض می‌کنه ما در شریعت اگر قرار بشه به اصول اعتماد نکنیم برای فهم مغازه شریعت چیکار بکنیم برای فهم احکام ایشون راهش ایش اینه فقط به کتاب و سنت کتاب هم از راه سنت سنت هم از راه اهل بیت راه اهل بیت هم فقط از این کتب و اصول اربعه ما که موجوده این خلاصه ای تفکر ایشان خلاصه اینه تفکر ایشان کتاب به شرطی که از سنت باشه سنت هم به شرطی که کتاب و سنت به شرطی که از روایات باشه روایات اهل بیتن یعنی طریقه اهل بیتن به شرطی که از رسول هر باشه خب تا آرازم به همراهی که خودشون گفتن حدش بخونی روشنی تو این خلاصه یه طریقیشان البته در علمای ما اگه بودن که ما گفتیم برگردیم به کتاب و سنت حالا چه از مجموعه روایات اهل بیت باشه یا اگر نباشه کتاب باشه از مجموعی شواهد کتاب هست که شاید به که در بحثا قابل وجود خبر نده بینه البته راه دیگرش این بوده که ما قبول کتاب و سنت و از راه اهل بیت ما که از راه اهل بیت طریق معینی نیست این گفتند خصوص روایات در خودو برعرض مثلا ما باید مجموعه شوال باشیم این رایی که ما رفتیم پس بنابراین یه دراهم اینه که همون اصول به اخلی دیتم تعبد داره این رایی که موجه خبر تعبدی قالمه مثل آقویی و دیگران پس اون شکل ترهیشانه تره تفکره ایشان خلاصه و اما ما از کردیم وقتی تاریخ اسلامی رو بررسی کردیم بیدیم غیر از کتاب و سنت تاریخشان هم تا حضرت زیادی مشخصه بیشتر از زمان عمر اولین چیزی که لیل از تفاقه سننه بود خیاس و اجماعه این دو سال دایین مشکور احضرت زیاده جا بوده ها این دو سال اول رای بود بعد تیاس بود بعد مسائل دیگه هم کشیده شد استحسان بود بعد استصلاح بود بعد صد زرایه شد این در دوم در مدید هست و دیگه ها نگیم خواهد یک گفت می خود یاده بعد مسئله تره مشرک شد که منجرد شد دیگه نظریه قرارداد اجتماعی مثلا بعد کشف و ارکان شد قیل از حالا کل افهات و اصولم هم دیگه محرم شد که از تر این مجموعه مب... استصاب شد براحت شد اینا هی اضافه شد هی یکی یکی اضافه شد لیکن خب میدونید که ما اجمالا به ازها ح اهل سنت برای صحت اینها به روایات هم کردند بعد به از علیه سمهی نشد که دیگه چند ما و شرده و, و این صافر این صافر غزیه این غزی. از اینها اگر ثابته رفتی به بحث احکام شردی نداره مثل ما واجب و بعد بشن نقطه دیگه ان شاء الله على محمد وآله